دوستان، یه چیزی من چند وقت پیش نوشته بودم یه داستانی که توش هست داستان علم تخیلی حالا امید امیدوارم چاپش بیاد بیرون توش اینطوریه که اول کاری مجموعه یه پرونده است یه مجموعی از اتفاقا میفته و اون تو جهان بحراناییه که برای تمدن انسانی پیش میاد بحرانای زیسمایتی از جنگ هست اتفاقای مختلفی است که هر کدومش میتونه یه تمدن رو منقرض کنه و یه تمدن در سطح تمدن یه گونه یعنی گونه انسان هو و ابتدای داستان اینطوری شروع میشه که یک نماینده ای از تمدن های انسانی رفته توی سیاره دیگری و داره تشکر میکنه از موجودات بیگانه ای که به موقع به داد زمینی ها رسیدن و زمین رو از یک بحرانی که گریبانگیرش شده بود نجات دادن یک تمدنی شکوفا در زمین وجود داشته یک بحران زیست محیطی، یک مرضی بر این تمدن میتازه و نزدیک بوده این تمدن از با بره ولی خوش‌وقتانه اون تمدن نجات پیدا می‌کنه و نماینده‌اش میره به سیارات دیگه که تشکر کنه بابت این قضیه. اتفاقایی که بعدش میفته خب مربوط به تمدن انسانیه دیگه و معمولاً خواننده فکر می‌کنه که اون نماینده‌ای هم که رفته تشکر داره می‌کنه یا آدمیه که از طرف زمین رفته و داره حرف می‌زنه. منتها واقعیت هم اینه که حالا آخر داستان حالا من مشهورم به اینکه تای داستانامو لو میدم ولی تای داستان اینطوریه که اون موجودی که رفته و داره از طرف زمین حرف می‌زنه مورشه است، آدم نیست. ما تصدیری که معمولاً داریم اینه که این موقعی که توی طبیعت بهش نگاه می‌کنیم، این ربطی به تمدن نداره. این یه چیز وحشیه. این یه لونه مورچه است. این نشوندهنده تمدن نیست. نشوندهنده پیچیدگی نظام اجتماعی نیست. بلکه پیچیدگی نظام اجتماعی به... نه این واقعاً خراب. همونطور که گفتم های انسانی یه مقدار ناکارآمدن من برای مورچه‌ها تا حالا نشده بود سمینار بدم هیچ مشکلی پیش بیاد همونطور که می‌بینید این چیزی که ما از تمدن می‌فهمیم همچین شکلیه معمولاً ما معمولاً وقتی یه همچین تصویری ببینیم به نظرمون میاد که آها اینجا یه پیچیدگی یک فکری پشتش هست و تصوری که داریم معمولاً تصور تکاملی نیست یعنی ما توی نظام‌های تکاملی این رو می‌دونیم که لایه های متفاوتی از اجتماعی شدن ممکنه معمولا یه همچین ادواری داریم توی رفتارشناسی جانوری این جدول یکی از مهوراش به ما میگه که چه شاخص هایی تو زندگی اجتماعی وجود داره مثلا اینکه آیا والدین از بچهشون پرستاری میکنن یا نمیکنن مثلا اینکه نسل افراد رو هم دیگه میافته یا نه یعنی اونا که جوانان و اونا که پیران کنار هم دیگه زندگی میکنن یا نمیکنن مثلا اینکه تقسیم کار اجتماعی بینشون رخ میده یا نه و بعد از اون مهم‌تره تقسیم کار اجتماعیشون به جفتگیری و به زادآوریشون مربوط میشه یا نمیشه یعنی آیا تقسیم کار اونقدر پیشرفته که بعضیا فقط تولید مثل کنن و بعضیا دیگه تولید مثل نکنن بر مبنای این شاخص‌های مجموعه‌ای از داده هاست دیگه اینکه مثلا توی اینا یکی دیگه که دسته جمعی از بچه‌ها مراقبت می‌کنن یا نمی‌کنن حالا هست می‌تونید ببینید بر مبنای این اون یکی محورش به ما میگه که درجه پیچیدگی اجتماعی شدنشون چقدر. چقدر اجتماعی یعنی موجودات ما مثلا جانورانی رو داریم هر کدوم از شما اگر آشپزخونتون یه خورده کر و کثیف باشه موقعی که میرین توی آشپزخونتون شبا چراغ رو روشن میکنین یه سری سوسک اونجا میبینین که بعضی بعضیشون بزرگن یعنی سل های متفاوتی کنار هم زندگی میکنن ولی مراقبت نمیکنن از بچه هاشون و همکاری ندارن و تقسیم کاری ندارن. اینا به اصطلا پارا سوشالن یعنی شپ اجتماعیند جمعی زندگی میکنن اصلا اجتماعی نیستند. اما توی این سلسله مراتب شما میتونید بیاین و ببینین، بعضی یا واقعا تقسیم کار میکنن. بعضی ها کاست دارند، طبقات اجتماعی متفاوت دارن بسته به کاری که میکنن شکلشون. دگرگون میشه و بعضی هاشون انقدر این کار رو دقیق انجام میدن که شما میبیند یه برنامه جنتیکی برای تقسیم کار اجتماعیشون وجود داره جاندارانی که پیچیده ترین جوامع رو رو, رو کره زمین تشکیل میدن اونهایی که یافته ترین جوامع رو دارن اصطلاحاً بهشون میگن یو سوشال که اینو من به فارسی ترجمه کردم هو آشیان هو همون یو خوب یعنی خوب یعنی سو خونه جمع در واقع خانمان یام چه معنی میده لاتینه کلم و هو این رو ترجمه کردم یه جان یعنی که هو آشیانن یعنی در پیچیده ترین سطح ممکن چیز میکنن در واقع زندگیشون رو تنظیم میکنن اگه اجازه بدیم اینو بزنم کنار و دوستمون تو اتاق فرمان من گفتم بعدی لطفاً بعدی رو بزن من الان برگرد آره برگرد برگرد برگرد بله برگرد همچنان آره همون یه دنیا برجسته خیلی خوب دوستان موجوداتی که آشیانن، یعنی اونایی که ویژگیاشون چیه اینا دسته جمعی بچه‌ها پرستاری میکنن خیشاوندن همه توی خانواده اینها تقسیم کار اجتماعی خیلی اکید دارن بعضیاشون کارگرن بعضیاشون دفاع میکنن از خونه بعضیاشون پرستاری میکنن تو هر لحظه هر گروهشون یه کار ویژه تخصصی انجام میده اینها ویژگی که دارن اینه که تقسیم کار اجتماعیشون در حد جفتگیری تنزل تکامل پیدا کرده یعنی بعضی هاشون جفتگیری میکنن ژنومشون رو منتقل میکنن به نسل بعد و بعضی ها اصلا جفتگیری نمیکنن اصلا بالغ نمیشن به تعبیری توی رده های متفاوت جانداران ما تکامل هواشیانی رو می‌بینیم توی پستانداران هم داریم مثلا توی پستانداران نمونه مشهوری که داریم موش کور برهنه احتمالا که احتمالاً شما هتروسفالوس اسم جنسش و heteroوسفال یکیه یه موشکول دیگه هم داریم که شبیه اونه ولی حالا برهنه نیست مو داره بدنش اونجا میبینید بینید اسمش اسم جنسش اون هم هواشیانه او هم همین ویژگی ها رو از خودش نشون میده ماتا همونطور که داریم میبییم توی شاه های متفاوت حیات نامتقارن این توضیح شده توی پستانداران خیلی کمیابه دو دوتاگونه داریم که آدم توش نیست که آدم به لحاظ تکاملی جوامع خیلی پیشرففت ای نداره. بلاازه تکاملی یعنی ما تقسیم کاری که با هم دیگه داریم یه تقسیم کار رفتاریه که خودمون تصمیم میگیریم در موردش برنامه ریزی ژنتیکی براش نشدیم به همین دلیله که خرابکاری می کنیم به همین دلیله که محیط رو تخریب می کنیم به همین دلیله که همدیگر از بین میبریم به همین دلیله که نامتعادله سیستم تکامل اجتماعی انسان اگه این جدول رو نگاه کنید متوجه میشید که پیشرفته ترین در واقع شاخه های تکاملی که این سبک زندگی رو دارن اونایی یعنی که اصللا بهشون میگیم نازک بالان یا راسته زنبور ها و توشی خانواده ای از خانواده مورچه ها، نزدیک 20 گونن. خیلی ها هزار کل پستانداران هزار خورده کل پستانداران عدد بزرگه. مرشه ها هزار و هواشیانن و این بزرگترین و زندگی اجتماعی که میبینیم البته موریانه ها هم همشون هواشیان و موریانه یه مقدار شبیه سوسکای خونگی هستن که شما میبینین بلاواز تکاملی خویشاوندشون هستن کلن سه هزار افزد یعنی کلن تنوای کمتری دارن و زنبور ها هم که خویشاوند مورشه ها هستن همچنین هواشیان محسوب میشن بعضی اگه بعدی رو لطف کنید توضیح جغرافیایی حشرات اجتماعی، حشرات اجتماعی حشرات اجتماعی هواشیان مشخصا زنبور ها ها، این فقط الان چهار پنج گونه، زنبور اصل فقط داره نشون میده، جهانیه، مثل آدم میمونن این و خیلی زودتر از آدم این اتفاق افتاده، اون در واقع رنگ قرمزی که میبینید همینجا پخش شده، زنبور اصل معمولی، آپیس ملیفرا، زمبره‌سالی معمولی که می‌بینید توزیه جهانی داره تقریباً شبیه آدم توزیش. بعدی رو لطف کنید. ما معمولاً نگاه می‌کنیم می‌گیم با با مرشاه که همه شبیه همن آدم‌ها ببین چقدر فرق می‌کنند. شما کافیه بریم بیرون تا ببینیم آدم‌ها هم رفتارشون فرق می‌کنه، قیافه‌شون، رنگشون خیلی فرق می‌کنند نه. در حالی که ما چون خودمون آدمی می‌ترمی‌بینیم. اگه بعدی رقیق کنید فقط مرشاه رو اگر شما یه خورده داغتر بیشتر نگاه کنید. دقیقاً انگار دارین فیلم علمی تخیلی می‌بینید خیلی متنوعن همه چیزشون متنوع شکلشون متنوع رنگشون متنوع رفتارشون متنوع بسیار بسیار تنوع چشمگیری دارن بعدیر اگه لطف کنین اندازه چون چن کوچیکه ما اینطور فکر می‌کنیم اینی که الان دارین اینجا می‌بینین این میرمیکا روگینوداست این یه مورچه خیلی ابتداییه خیلی ساده است این در واقع اندازه بزرگش که اینجا می‌بینین 5 6 میلی‌متر اندازش، خیلی ریزه ما شاید به خاطر اینکه خودمون درشتیم و موجوداتی هستیم که در مرتبه چند دسی متر اندازمون در واقع در حد متری اندازمون در حد کیلو وزنمون موجوداتی که کوچیکن میلی متری ان میلی معمولا ما خیلی حساب نمیکنیم منتها یه فرسش تکاملی مهم اینه که اپتیموم اندازه جانوران چیه یعنی جانوران رو کره زمین اپتیموم بهینه به اندازه ای که میتونن پیدا کنن به لحاظ تکاملی چقدره؟ خب چه میتونین این رو جواب بدین؟ نگاه میکنین ببینین بیشترین تنوع گونا ها رو تو چه اندازه ای نه؟ اگر در یه اندازه شما خیلی های زیادی داشته باشین اندازهشون اون قدر باشه م اون اندازه افتیموم دیگه. اون اندازه رو اگه بخواین موا بکنین حدود یک سانتی متر. رو کارره زمین بیشتر گونا ها میانگیین بگیرین یک سانتی متر اندازهشون ب براین ما یه سر غول بیشا خود دویم تو کارره زمین. مورشا نیستن، مورها ها میاننگین همون حدود یه سانتی متر بعدی رو ای ما خوشحالیم مغروریم صرفرازیم به اینکه دستگاه عصبیه پیچیده‌ای داریم ما پیچیده‌ترین دستگاه عصبیه تکاملی رو روی کره زمین رو داریم به نظر اگه ما بخوایم ارجحیتی قائل بشیم برای خودمون به عنوان گونه Homo رو این فقط می‌تونیم منگوش بذاریم ما 5 درصد وزن بدنمون دستگاه عصبیه خیلی عجیبه همین چیزی. ما 60 کیلویم، یک و کیلو حدوداً مغز داریم خیلی خیلی عدد بزرگی من فهم کنم اشتباه گفتم، دو درصده دو درصد وزن بدنمون دستگاه عصبیه، حدود یک و کیلو توی هفتاد کیلو دستگاه عصبی داریم مورچگان و کلان هشرات به خاطر اینکه یه قلاف استخوانی بزرگ دور بدنشونه وزنشون کلان نسبت به بافتهای زندهشون بالاتره منتها اونا رو هم وقتی نگاه کنید می‌بینید که بالاخره یه وزنی مغزشون نسبت به بدنشون داره و سنگین‌ترین مغزها توی هشرات هم مال هشرات اجتماعیه و مغز یعنی فکر نکنید مثلا یه چیزی شبیه مورچه مغزش ساده است این عکس بسیار زیبایی که در واقع از مغز مورچه گرفتن رو نشون میده اون عکس در واقع رنگ‌آمیزی شدهشه بعدی اگه لطف کنید طبقه های اجتماعی مختلف مغزای متفاوتی دارن اینا سه تاشون مال یکونه است اونتا میانی رو که میبینید مال ملکه است اون یکی مال در واقع کارگره این یکی مال مورچه نره و این نکته کوچیکم بگم که نرها توی زنبورها و موورشه ها این کرووموزوم دارندن یعنی تعداد کرموموزوم هاش اون نصفه. مثللا هم هاپلوایین. ازاصلا طرحاح شدن برای اینکه جفتگیری کنن بعدش هم میمیرن خیلی سریع. و بنابراین جوامه خیلی فمیستند برای خانم‌هایی هایی که همچین گرایشی دارن متاسفم تو این گونه به دنیا اومدن زندگی بعدیتون تو اون گونه نگه برین. خیلی بیشتر بهتون خوش میگذره همه کارگرها همه مور که تقریباً شما می بیننید و زنبورها هم هم. همچنین. یه ویژگی که دارن مورشگان و حالا تو بعضی از حشرات اجتماعی دیگه مثل موریان ها هم می‌بینید، ولی تو مورچه خیلی چشمگیره اینه که خوراکشون اجتماعیه اصلاً لوله گوارششون معده دو تیکه داره یه پیش دارن حشره بهش میگن پروونتریکولوس پیش معده و این پیش معده غذا وقتی که داخلش قرار میگیره گوارده نمیشه یه کیسه عزلانی که فقط قرار غذا رو نگه داره و موقعی که دوتا مورچه به هم می رسن حالا ممکنه الان برای ما پسساندارانی خورده غیررادی باشه این حرکت مونتا این کیسه منقبز میشه و غذا در میاد از دهنشون و ردو ودل میکنن غذا رو اینو بهش میگن ترفالکسی به عبارت دیگه غذا دهان به دهان مثل شایع توی جامعه مورچه میچرخه و به همین خاطره که یک شکلی از در واقع تصاوی شیمیایی شما توی کلانی دارید که فقط به غذا مربوط نمیشه معنا و اطلاعات هم همینطوری میچرخه. چون بو را هم به همین ترتیب منتقل میکنن مورچگان یدم میلسن همدیگر رو و وقتی میلسن بوگی که ترشح میکنن رو هم بر میدارن و اون رو هم با دهان به دهان منتقل میکنن و کیه که ندونه که دستگاه بویایی حشرات اجتماعی به ویژه مورچگان کارکردی داره شبیه زبان صوتی که ما داریم ما موجوداتی هستیم که دستگاه بیناییمون خیلی قویه و با اشاره همین الان من حرف میزنم همچنان اشاره میکنم و شما چشم منو دنبال میکنید بیناییمون خیلی قویه قشر پس سرمون اطلاعات بینایی رو پردازش میکنه و شنواییمون مهمه و زبانمون توی دستگاه شنوایی تکامل پیدا کرده ولی مال مورچه ها توی دستگاه بویاییشونه برای اینه که شاخک بزرگ و چشم کوچک دارن این حرکت تروفالکسیه که میبینید اگه بعدی رو لطف کنید مورچگان این که داریم میبینید استیتونه مورچگان لانه درست میکنن خیلی پیچیده، جوامه خیلی بزرگ دارن بعدی رو اگه لطف کنید، لانه رو گاهی میکنن. بعدی رو لطف کنید. آره خجالت نکشیم، بعدی رو لطف کنید. <بش> بله این اسیتونه، همون مورچه قبلیه لانه که با بدن خودش درست میکنه. اسیتون همون مورچه های جنگاوری که توی لشکریان بزرگ حمله میکنن به جانوران دیگه و همه جا رو در واقع پارو میکنن طول لشکرشون 100 متر میتونه باشه. تعداد اعضای یک کلونی ممکنه یک و خورده میلیون باشه. عدد خیلی وحشتناکه اینایی که میگم تعداد شکارهای بزرگی که در روز میکنن به سی هزار در روز میتونه برسه و اینا توش پرنده و اینجور چیز هم هسته یه چیز واقعا وحشتناکه و این یک نظام اجتماعیه که این ملکه داره و سازماندهی اجتماعی داره و تقسیم کار داره و کلش مثل یک بدن زنده رفتار میکنه بعدی رو کنید ممکنه ما بگیم که ما انسان‌ها دامپروری داریم، ما پیچیده ایم. ما فناوری داریم. خب مورچه‌ها هم دارن. این مورچه‌ای که داریم می‌بینید، یه گله شته رو داره دامپروری می‌کنه. مورچه فرمیکاست و شته‌ها، خانواده آفیده، اینا شهد گیاهان رو می‌خورن و خیلی سری گوارشش می‌کنن و دفعش می‌کنن. در نتیجه آن چیزی که دفع می‌کنن بهش میگن عسلک. قند داره و مغزیه و مورچه‌ها می‌دوشن اینها رو. و در مقابل گرک ها ازشون محافظت می‌کنن گورگای دنیای مورشگان کفش روزکه خوشگلیه که ما همه دیدیمش و اینا رو می‌برن آقل دارن میبرن تو خونه براشون لونه‌شون جا دارن موقعی که بارون میاد نگهداریشون میکنن و همطور که میبینید داره اصلک رو میخوره، باز برای ما ها که لولو گوارشمون خیلی یه طرف است ممکنه به نظرمون خیلی ناراحت کننده باشه منتها حشرات اینجوری نیستن و اینقدر نداشته باشین بعدیرو اگر لطف کنید ما ممکنه بگیم که ما مغزمون خیلی پیچیده است ما خیلی موجودات پیچیده‌ای هستیم نمونهش این که ما ما معتاد میشیم ما مواد مخدر مصرف می‌کنیم خب مورچه هم میشن اینکه اینور می‌بینید آتملس پوبیکولیسه این یه که که میره تولونه مورچه میخوره لاروای مرچه رو گذاری می‌کنه لاروش لارو مرچه رو می‌خوره یه چیز وحشتناکیه و خب چرا کاری بهش ندارن به این دلیل چون که آتملس پوبیکولیس قاشاخچی چون از قدرت شکمیش مواد مخدر ترشح میکنه و مورشاه میرن اونو میخورن و ملنگ میشن و میمیرن بعدش هم وقت و بنابراین اینها هم قاشاخچی دارن و متمدن چون از خودشون نیست گونه خودشون نیست قاشاخچی حالا شما ممکنه ترجیحتون این باشه که سوسکی باشه قاشاخچی یا یا همگونه تون باشه بعدیرای لطف کنین وقتی منم تموم شده لونه های مورشاهگان خیلی پیچیده است مکانی که تر... تولید میکنن تراوش میکنن از جامعه خیلی خیلی حساب شده است انرژی توش حساب شده کار میشه رطوبت توش حساب شده تنظیم میشه خیلی پیچیده است شما من جای دیگه در مادهش حرف زدم اینجا دیگه وقتتون رو نگیرم بعدی اگه لطفاً کنید، الگوی لانه رو میبینید و پشت سر هم چند تا تصویر رو ببینید که فقط شکل لانه درست کردن بر مبنای برگ رو بهتون نشون میده ببینید چقدر پیچیده است لطفا کنید بعدیرو ببینید برگ ها رو میگیرن اگه لطف کنید بعدی رو این گونه فیدل لاروشون لارو خودشونها ها مثلا ابریشم تار ترشح میکنه با اون تاره میدوزن به هم رو و بعدی رو لطف کنید و لانه درست میکنن مراحل تولید همچین لانه این بعدی رو لطف کنید این شکلیه میگیرن میکشن میدوزن بعدی رو لطف کنید بله جمع میکنن بعدی رو لطف کنید و میشه لونه تر و تمیز خوشگل که بعدش هم وقت میپلاسه لونه پلاسیده میشه و دوباره این کارو میکنن بعدی را ای لطفا کنید و یه لونه فعال می‌بینید. بعدی؟ بله لطفا کنید بعدی رو. ما هم شهر داریم. راستش رو بخواید شهرهایی که ما داریم خیلی جالبه ها، خیلی خوبه ها، ولی اگر سازمان رو نگاه کنید می‌بینید ایراد داره. آلوده است اولین ویژگی‌ش ناکارآمدی خیلی چیزاش خیلی تخته، شهر‌های ما. ما برای اینقدر تراکم جمعیت هستن ساخته نشدیم بلاازه تکاملی. و روابطمون به همین دلیله که یه مقدار از تعادل خارج میشه ما در واقع هنوز که هنوزه اون گونه ای از پستانداران عالی هستیم که قبایل چند ده نفره قرار داشته باشه نه چند میلیون نفر که هم دیگه زندگی کنن و یه سری از اختلالا احتمالاً به اینجا برمیگرده بعدیرم اگه لطف کنید فقط برای اینکه مقایسه کنید از برای اینکه ابعادش رو به دست بیارید اینا لونه مورچه است و وقت منم تمام شده این مورچه‌ای رو که می‌بینید اینا رو می‌سازن ابعادو دارید دیگه چند میلی 5 میلیمتر، mm, 6 میلیتر mm. و بعدیم بله یه جمع بندی کنم خدمتون دو و ببندیم با. ببینید ما همیشه موقعی که در مورد تکامل حرف میزنیم تکامل انسان انگار مورد نظرمونه. ما موقعی که در مورد پیچیدگی حرف میزنیم. انگار یه تتصابی داریم در مورد اینکه پیچیدگی گونه خودمون رو ارجهح بدونیم بر گونه های دیگه. ما همیشه موقعی که در مورد نظام اجتماعی در مورد تمدن در مورد اندیشیدن حرف میزنیم. مغز بزرگ انسان که واقعا بزرگه که واقعا پیچیده است شکی درش نیست این مورد نظرمونه من الان وارد فرصتی نبود که بخوام وارد بحث مقایسه این دو با هم دیگه بشم و اینکه چقدر هر کدوم نقاط قوت و ضعفش کجاست فقط یه بینی رو خدمتتون بگم اونم اینکه که از حدود 300 میلیون سال پیش که تکامل اجتماعیشون شروع شد تا الان هستن آدمیان از حدود حدود هزار سال پیش، 2 دهم میلیون سال پیش اصلا شروع شد گونه‌شون. زندگی اجتماعی یک جانشین ما نزدیک پنج هزار سال پیش شروع شده. مال همین اواخر اواخر. خیلی بعیده. حالا من امیدوارم ناراحت نشین. هر گونه ای رو من بهش گفتم منقرض میشه، ناراحت شده. شما ممکن ناراحت شین. ولی ناراحت نشین. همه گونه‌ها منقرض میشن و ما هم احتمالاً منقرض میشیم. بعیده تا 5000 سال دیگه این گونه ادامه پیدا کنه. و اگه بخواد ادامه پیدا کنه، راهش اینه که ما گناه دیگر رو بتونیم ببینیم و بتونیم یاد بگیریم ازشون. یاد بگیریم چگونه در یک محیط زیست متعادل، متعادل زندگی کنیم. یاد بگیریم به جای اینکه بترسیم از اینکه یک جانور باشیم. یاد بگیریم که جانور خوبی باشیم. سپاس